احساس نبز تون تر آرام شست قدرت رویا بافی مغز مختر لبخم به زمان میده زرعت چشم بسته عطر گل حس میشه دور تا دور فیگورای تز دلیل شور و شادی عشق صرفا کم قفل زخف بلکا دست و گرم چرخش آینده توی زر گلا ورده گل من چقدر سکوته چقدر سقوتش موزیکت بخشه منم عاشق رقصت لبز فید تم کی بوسکم میدونم دوست داری با زبون تفرنگ سرحل اولا ای جنگ روش میزنی روی لب میگو ماما نفهمه لابرم چشمام خیره به چشمات دور میشه دنیام رهب زیگارا دود میشه اول رابطه همونه اتفاقه افتاد گفتیم شک داری گفتم نه من به کسی اعتماد یاد نگرفتم به کسی اعتباد کنم گفتی اینجوری نباشه ذر مثبت فکر کن خوب باشه ذر دانگار قشق نگاه کن آدم هم مثل هم نیستم آره آدم مثل هم مثل نفسم ریتم نفست بود نگاه تافاظ تلخی میخوند قدمات زهر به رفتن میزد اجرای موسیقی قلبو چی گوند که هر هرزه برداشتا میتونست بازی کرد باش بهم به یاد داد توی زندگی فقط و فقط بازی کرد باش تا که نقاب زدی روی سیاه چای نمیزنی جاش لیمونه لکچری بولار ساب ویلا آقاتون چقدر بهت میاد اگه من کم بودم تا چقدر بودی اگه من بد بودم تا چقدر خوبی همه معمولی تو که آس بودی برخوردی با همه متن باز بودی ببخش اگه قسم پایزی نداشت با چرط می‌بندم اجازی نزاشت دستای پنهان جمعه شد سلالت ملت و راب تو رابطه هم توفه فیوان